Assalamu alaikum warahmatullah alaahu alaihi min ash-shaitan ar-rajim. Bismillah ar-rahman ar-rahim. Wa lahu wallahu bi Allahi alaihi aladhim. Hasbullahu anim al-wakil, anim al-mualla, anim al-nasir. Thumma salatu wa salama ala Sayyidina wa nabiyina Abi l Muhammad. و علی آله تیبین تاهرین سی مولانا و سیدنا الحسين الحسین و قیاث المستر المستکین و ملجه الحاربین و امین و امان حجت ابن الحسن الاسکری اروحنا لتراب مغدم فدا اللهم اجی الفرجه وسهل سحه زمن سلام خدمت خانم ها و آیون و تبریک میلاد مفر و علی ابن مصری زاله الاه و تیت و سنا پیش و همچنین میلاد مبارکه حضرت معصوم سلام الله علیها رو به ساعت مقدس امام اصط به شما عزیزانی که در این مجلس و محفل به محبت و ولایتون عزیزان تشریف آوردید بحثی رو که از جلسه قبل شروع کردیم در مبحث نبوت و طی چند جلسه ای که در خدمتون هستیم به نکاتی پیرامون این بحث ان شاءالله میخوایم بپردازیم من خلاصه ای از جلسه گذشته خدمت شما عرض کنم و دنباله بحث رو در خدمتون باشیم اگه سوالاتی هم مطرح شد ان بتوانیم که پاسخگو باشیم این گونه عرض شد که کلمه نبی از نبع به معنای خبر و از اون جهت نبی را نبی گویان که چون از عالم ملکوت یا از سوی خداوند متعال اخباری رو که برای انسان‌ها سودمند است می‌آورد و آنها را با خبر می‌کند از آن چه که رضای خداست به دنبال اون نکته این نکته عرض شد که در روایات و آیات که ما مراجعه می‌کنیم خدای متعال هدف از بئست انبیار رو برای ما معلوم کرده این نکته که آیا چرا و برای چه خدا ارتباط با مخلوقاتش را از طریق رجل الهی قرار داده است و این رجل الهی انتخاب و استفا و اجتبای اوست یعنی خود خدا انتخاب کرده اینها رو چرا که اینها رسولان الهی هم. اینها والیان امر الهی هستند در آیه مبارکه شریفی سوری دخان که ارشو لقد اخترناهم علا علمین علال آلمین در این آیه مبارکه خدای متعال می ما انتخاب کردیم آنان را بر اساس علممان برای آلمین این اختیار انتخاب خدا بر اساس علمی بوده که وجود زباد مقدس عیمه فرمودن علم نافذ خدا بوده است که پیشاپیش پیش چه کسی را برای چه منصبی و برای چه مسئولیت انتخاب کند این به ما رفتیم پیدا نمی چرا که در حیطه فهم ما نیست و فرمودند که خیلی هم تو این مسئله کاوش نکنید که چطور شد پیامبر شد پیامبر امیر شد امیرالمومنین، انبیا شدن هر کدوم مثلا با اون منصب ولی قطعا بدانید که از روی حکمت بوده است قطعا بدانید خدای متحال آنچه که انجام داده است بر اساس علم و حکمت و و بر اساس مداقعی که در امر خلقت دارد انجام داده منطور فهم من شما مای ما خلقت نمیرسد این انتخاب خدای متعال برای مخلوقات و ارتباط با مخلوقات سنتی بود که مشیتش برای این تعلق گرفت که این گونه انجام شد عرض شد آیا میشه خدا به طریق دیگری هم با مخلوقاتش ارتباط ایجاد میکرد؟ بله به شکلهای دیگری هم خدای متعال میتوانست با مخلوقاتش ارتباط ایجاد کنه اما این گونه ارتباط رو مشیت کرده است آیا فقط و فقط این راه رو میتوانست انتخاب کنه و باید خدا این طریق رو انتخاب کنه ما باید و حتما و قطعا و اینها نداریم در کار خدا که ما بگیم باید خدا حتما این کار میکرد جز این راه راه دیگه نبود نه راههای های هم هست که خدای مطال میتواند برای ارتباط با مخلوقاتش مشیت کنه اما این راه رو مشیت کرد که از طریق رجل الهی با مخلوقاتش آنچه که رضا و سخت اوست آنچه که از عوامر و نواهی اوست به آنها برساند خب در جلسه گذشته روایتی رو از وجود مقدس امام صادق علیه سلام خوندیم که چون خلق خدا نمیتوانند مستقیما با خدا ارتباط ایجاد کنند و خدا هم نخواسته است با مخلوقاتش مستقیما ارتباط ایجاد کند از این جهت امام ساده و فرمود خدای متعال سفیرانی را انتخاب کرد برای بندگانش رسولانی را انتخاب کرد که این رسولان و این سفیران منافع و مزار و مفاسد و آنچه خیر و شر بندگانه است به آنان برساند دقیق بفرمید و آنچه که از سوی خدا آمده از قطعا در جهت روش صحیح زندگی کردن تنها شامل زندگی دنیاوی نیست بلکه شامل آنچه که بعد از این هم ما در پیشداری می شود یعنی هم سعادت دنیا هم سعادت آخرت آنچه که به درد منافع ماست در دنیا در آلم برزخ و در آلم آخرت اینه دقت بفرمید یعنی رسولان الهی آنچه که خیر و منافع بشریت برای این عوالم هست فرمودن نه فقط برای دنیا انسان خیلی دست و پا بزنه خیلی بخواد کوشش به خرج بده که تازه خیلی جهان به عرض بزرگ مقصد نمیرسد و نمیتواند چیزی مشپر کن، کنه ارزه کنه نهایتا برای دنیای انسانیت میتونه یه برنامه ای رو عرض پیش بینی کنه و این اسم ها این مکتب هایی که الان ما می‌بینیم، در واقع شعارشون اینه که ما می‌خواهیم به انسانیت سعادت بدهیم ما می‌خواهیم به انسانیت راه زندگی را بیاموزیم راه بهتر زندگی کردن را بیاموزیم در حالی که خدای ما و خالق ما از طریق رسولانش این کار را انجام داده است منتا چون بشریت میخواهد به جهالتش و به هماغتش این نور درخشان را که میخونم براتون امیرمان فرمودن خدا یه متعال لطف کرده است منت گذاشته است بر انسانهای جهول و بر انسانهای نادان که در اون تاریکه های ظلمت جل خورشید وجود نبوی را ظاهر کرد تا بدین وسیله اینها راه را ات شاه تشخیص بدن اما هزار چراغ دارد و بیراه می رود بگذار بی افتاد و ببیند سزای خیش می بینیم این گناه هست برای ما فرموده ان بعد بشریت امروزه میاد این گناه سخن می گوید که انبیا دینشان دین که است حالا به بعض شبهات شاید انشاءالله برسیم توی این چند جلسه یک جلسه شاید این قسمتشو بذارم برای شبهات نبوت جمله که شبهات همینه که نبوت دینش دین که است ناول مال هزار اندی سال پیش است و ما به دین جدید احتیاج داریم و نبوت قابل تجربه است توسط انسان‌های دیگر توسط عرفای دیگر ما چرا نبوت را انحصار کنیم فقط در تعداد محدود و معدودی نه هر کسی که بتواند خلاصه جمله اینه هر کسی که بتواند خلاصه مطلب با خدای متعال سر و سری سر پیدا کند و ارتباطی ایجاد کند او هم نبیست که حالا انشاءالله میرسیم به این شاید دو, دو جلسه بعد باشه که بعض شبهات و نبوبت و خدمتون ارز کنم حال موضوع وجود مقدس امام صادق علیه السلام در روایت دیگر از منصور ابن حازم علت به انبیا از سوی خدای متعال رو اینگونه معرفی میکنن که خدای متعال رضا و سختش را یعنی کارهایی که راضیه و کارهایی که سخت میکنه برش از طریق انبیاءش خواسته برسونه به مردم پس علکی نمیشه یه کاری انجام بده بگه خدا قبول میکنه نمیشه انسان یه کاری را انجام نده بگه خب خدا دوست نداره من انجام نمیدم یا این کار انجام بدم خدا دوست داره نه رضا و سخت باید مهر نبوبت در زیرش باشد طبعا البته و البته اینو بهش که خدای متعال دو حجت برای ما قرار داده ای. یک حجت درون که عقل و یک حجت بیرون که رسول و حجت الهی است حجج الهی عقل بیرونند حجت بیرونند و عقل درون ما حجت درون ماست خدای متعال عملی را قبول میکنند که اولا شخص عاقل به تبییت از عقل بیرون اینو انجام بده دقیق بفهمید رضا سختش را طریق او باید متوجه بشه همینطوری نمیشه انسان برا خودش عمل کنه بگه خدای خلق تو قبول کن دیگه حالا هر کاری من کردم تو قبول کن کار قشنگه دیگه اگه یادتون باشه شاید در بحثی توحید بود گفتم این تذکره که در زمان امام ساده و الاسلام یه شخصی دزدی میکرد بعد بین فقرها تقسیم میکرد بعد این رو مرزی رضای خدا میدونستین عمل رو وقتی خدمت امام صادق علیه سلام رسید که او جانشین به حق است، صلی الله علیه و آله و سلم حضرت هم بر چه اساس این کار رو میکنی فکر میکنی خدا راضیه؟ گوه بر اساس آی قرآن این که هر کس کار خیر کند من جا به الهسنم فلهو اشرم ساله ها کسی کار خیر کنه ده تا و اگر کار سیه و گناه کنه یک برای اون عمل نوشته میشه پس من دزدی میکنم و اون رو به نفعه تقسیم تخصیم پس نقطه تا برای من سباب میماند از افراد این چه دینداریه برای خودت درست کردی خدا عمل رو از متقین قبول میکنن ما گاهی اوقات فکر میکنیم حالا به این فرد میخندیم گاهی اوقات خودمون نکند که این کنی عمل کنیم و به حساب خدا میگذاریم که خدا باید راضی باشد برای این فعلی که من انجام میدهم در حالی که اینگونه نیست باید زیر عمل من عمل من موقعی عمل صالحه که زیر اون رو عباد صالح و عبد صالح خدا نبی و انبیا و اولیا و عیمه خدا علیه السلام امضا کرده باشند خیلی مهم ها دقت بفرمید چون خدا عمل صالح رو قبول میکنه عمل صالح باید تحت اشراف عبد صالح به ما رسیده باشه امام رسادق علیه السلام می فرماید ان من عرفا ان الله ربا فيمبغي له ان يعرف ان لذالك الرب رزن وسخطا حزرت اگر کسی فهمید و متوجه شد که برای او پروردگاری است و خدا بهش لطف کرد که معرفت خودش را به او داد و فهمید که پروردگاری دارد خیم بقی لهو، پس شایسته است برای او انتخاب رفه برای اینکه بشناسه و بفهمد که این خدا چه چیزی و چه کاری و چه فعلی رو راضیه و چه پیلو و چه کاری رو ناراضیه. شما طبیعتاً اینطوری آدم وقتی با یک صاحب کمالی آشنا میشه که مخصوصا رتبه او بالاتره اغلب هک میکنه اینکه پایینتره در ارتباط با بالاتر حتی توی مقام های دنیایی که بداند که بابا چه موقع مثلا به او زنگ بزنه چه موقع از او سوال کنه چه موقع با او ارتباط ایجاد کنه چه گونه کنه چه سوالی رو بپرسه چه وقتهایی برای او مناسبه چه کارهایی رو او دوست دارد چه کارهایی رو او دوست ندارد این طبیعتا تو ارتباطهای کامیونکیشن یا ارتباطهای طبیعه انسان ها طبیعیه حالا چه برسه به خالق انسان ها وقتی که انسان فهمید خالق او او را آفریده است اقللا حکم میکنه که این خالق من قطعا که من رو خلق کرده یه <تصفح> کارایی رو دوست داری کارایی دوست نداره. به یه سری کارهای رضایت میده به یه سخته سخطههتا هم همین میفرماند میفرماند شخص عاقللیگوونه است. پس در مقام این برمیآید که این رضضا سخط را بشناسد خب. بعد حضرت میفرماند فرمان لا یعرف رضا و سخته پس رضا و سخط خدا رو نمی تونه بشناسه حضرتان جز دو این دو, دو راه اول یا مستقیما به خدا ارتباط داشته باشه یعنی به او وحی برسه دومی که نه از سوی رسولی که از سوی خداست این رضا و سخط رو به دست بیاره همینو می فرمان انهو لا یعرف رضا و سخته الا به وحی او رسولین یا باید به صورت وحی به او برسه مطلب یا اینکه رسولی به او برساند فمن لم یعته الوحی پس کسی که بهش وحی میرسه قطعا به حکم عقل فقط یم بغی لهو ان یتلو و رسول پس عقلم باید در طریق رسولان باید این او اوک رو بگیره دقت فهمید؟ این نکته رو ببخشید من عرض کنم روات تحصیل کنم این جملات رو منصور ابن حازم به امام صادق عرض میکنه میگه من در بحث نبوت اینطوری متوجه شدم درسته؟ این برداشت های منصور ابن حازم بود به امام صادق علیه السلام حضرت وقتی جملات منصور ابن حازم رو اینطور متوجه میشه و استدلال او رو در بحث احتیاج به نبی میفهمان رحمه کالله خدا تو رو رحمت کنه احسن باریکالله جالبه ها ببینید روایت ما این دقیقت ها این مداقه ها رو در فهم مطالب دین و راه رو چقدر اعمه تحسین میکنن که انسان همش فکرش برای دنیا نباشه بلکه فرای این دنیا برای آخره هم فکر کنه حتی در این سیستم خلقت فکر کنه که بابا بالاخره این خدایی که هست این خدایی که من خلق کرده به چیزی از من میخواد من خلق کرده خب چی میخواد چه چیزی باعث سرزا سخت اوست خب من که نمیده مستقیمان با خدا ارتباط ایجاد کنم اینجا شیطان اومده سو استفاده کرده اینجا شیطان یک عرض به حضورشان ترفند و هیله ای زده و اون ترفند و حیله این بوده که نه شما میتوانید دقت کنید بعض از ها با یک روش هایی عرض به حضور شما که تخلیه نفس کنن تسکیه نفس کنن بعد به یه مقاماتی برسن که بهشون وحی بشه که ما ت... روایات ما و تعبیر قران این که این گونه وحی یا وحی, وحی شیطانیه با این چیزایی میشن با این چیزایی میفهمن یه استادی داشتیم خدایش رحمت کنه میفرمون من در زمان جوانی در دوران طلبگی یه همحوزه‌ای داشتم یه روزی هم روجه من برگشت گفتش که ببین فلانی دیشب تو نبودی دیشب از سوی خدا به من وحش شد گفتم چی؟ گفتم دیشب از سوی خدا به من وحش شد گفتم خب چی وحش شد؟ گفتم من داشتم نماز میخوندم آماده برای نماز بودم ناگهان از سوی خدا صدای آمد در اتاق در حجره بنده من بنده من نماز برای تو بس است عبادت برای تو بس است تو به مقامی رسیدی که احتیاج به نماز نداری گوب گوش کنید میگو به من وحش شده کی اینه میگو؟ میگو کسی که دروز تلبگی میخونده میگو رفتم پیش مرحوم آشق حسن علی نخدکی ایشون میگو گفتم که همچین چیزی رو هم حجره ای من میگه گفت اینو میدونی که این کارا کرده این تحت لبا یه دونه از این قطبها از این عرفا تقبا اونا آشنا شده او تصرف کرده به قدرت شیطانی این تجلی وحیانی شیطانی رو براش کرده برای بگو این ذکر رو بخونه تا واقعیت موضوع رو متوجه گفت اومدم این ذکر رو گفتم بخون ذکر رو خوند و واقعیت موضوع برش روشن شد چطور روشن شد دیگه پس می شود شیطان هم وحی کند تصریح آیات قرآنه که اِنَّ شَيَاطِينَ لَيُهُونَ إِلَى عَوْلِيَاهِ شیاطین وحی میکنن وحی میکنن به سوی اولیهاشون کانا اینشالل اگه برسیم بحث وحی هم بگیم که مهمه در بحث نبوه باید الگاه میکنن تلقین میکنن خب دقیقا شیطان اینجا خیلی استادانه کار کرده لذا افراد به خاطر که در خانه خدا و در خانه انبیاء خدا دور کنه چجور ترفند نگفته از خدا دور شن. گفته از انبیاء خدا دور شیم گفته بیاین کسانی رو به تو معرفی میکنن بیا خودتون یا کسانی غیر از انبیاء رو دل ببندید این بحثی که امروز داره مطرح میشه تحت عنوان بست تجربه نبوی این که ماها میتوانیم در مقامی برسیم که مثل انبیا تجربه کنیم وحی را این از اون حیله های شیطانیست که خلاصه ما به مقامی میرسیم که میتونیم مستقیمان با خدا وصل بشیم و خلاصه میتونیم مطالب رو بگیریم ولیده تو این زمین بعض از عرفا گفتن که تو باید از شریعت بگذری. و از وادی طریقت هم بگذری واسل به وادی حقیقت بشی وقتی رسیدی به مرحله حقیقت دیگه اونجا تو نیستی وصل به حقی و حق برای تو آنچه که لازم است میگوید خیلی افراد اینجا گول خوردن اینجا که حضرت به ایشون به منصور من حازم رحم کلا شیطان تو هر جای استاده شیطان استاده نسخ بدر رو زده خانم آیون و جالب کسانی رو میبره که میخوان معتقد به خدا با اونایی که معتقد به خدا نیستن که کاری نداره که با کسانی که معتقد به خدا هستن این طرفند رو زده که به تو شما هم وحی میشه الهام میشه القام میشه نمونه شو برای شما بگم تو همین شهر خودمون تو همین کشور خودمون چه افرادی که هستن که ادعا دارن که بهشون ارتباط دارن با خدا یا با امام زمان و بهشون الغای الهام میشه مردم ساده هم میرن دل به اینها میبندن دقیق میفرمید و یکی از اون ترفندهای شیطان این هستش که میگوید چون نبی نیست چون نبی نیست پس دیگر با به دیگر باب ارتباط با خدا ا نبی بسته شده خودتو مستقیما میتونید کار انجام بدهید و جالب یکی از کسانی که نوبت رد میکنه عایز زکریای رازیه کاشف الکل عایز زکریای رازی از کسانی است که اعتقاد به نوحه نب... و قبول داره ها نوبت رد میکنه میگه ما تو جون نبی نداریم عقل ما کفایت میکنه ما عقلمون میتوانند آن چه که خیر و شر است و درست و غلط رو بفهمد احتیاج به نبی نتاریم انبیان نتاریم دقیقه میفرمین حالا کسان دیگه هم هستند که تو این زمینه متاسفانه که اینها در واقع دیدگاه های فلسفی هم دارند اما نبوت رو خلاصه زیر سوال میبرن و خودشون جایگاه در نبی میدانند وجود مقدس امام علیه بن مسر علیه آلاف و و سنا در اویون الاخبار رضا جلد دو صفحه 100 من ترجمه براتون بخونم حضرت می خلقت و قوای مردم به گونهی نیست که بتوانند به وسیله آن مساله خود را کامل کنند خواهر بشار هی دست و پا بزنه بابا نمیتوانی با این عقل گنجیشکوار خودت اقیانوس اقیانوس کهکشان کهکشان این عالم خلقتی که وجود دارد رو کشف کنی و اونچه خیر خودت رو به دست بیاری این نمونه بشریت امروزه که ببینید با عقل خودش کجا رسیده با فهم خودش حضرت میفهمن خلقت با قوای مردم اصلا تخصیصم هم نزدانا همه مردم حالا بگو نوابق فلاسفه فرخیختگان هیچ کی، اصلا هیچ کس از مردم نمی توانند مساله خود را کامل کنند و خدای سانع هم برتر از آن است که آنان او را مشاهده کنند اینا در اون مقامی نیستند که بتونن با خدا ارتباط مستقیمی ایجاب کنند و معلوم است که آنها از درک او زعیف و ناتوانند. پس بین خدا و آنان رسولان و رسولی معصوم لازم است این قابل توجه خود یکی از خانم ها بود که این دفعه تشریف ندارن که دفعه پیش سال کردن که انبیا همه معصوم ها کردم تمام رسولان الهی معصوم ها درجه اسمتشون متفاوته قطعا درجه اسمت بالاترین درجه اسمت رو ساعت، به ساعت مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر مومنان سپس و ائمه خدا اختصاص داره چما اعتقاد بونیم که مقام عیمه و دانوی سلام قطعا از مقام انبیا بالاتر است غیر از رسول مکرم صلی الله علیه و سلم تمامی انبیا خانم آیون تمامی انبیاء و اوسیه های انبیاء معصومن که از سوی خدا انتخاب شدن منطور درجه اسمتاشون متفاوته حالا برسیم چیز شباهاتم میرسیم که آیاتی از قرآن مثلا جمله همه آیه قرآن حالا به من نمونه که مثلا بعضی ها میخونن. که آیا پیغمبر گناه کرده محصیت کرد و چرا قرآن مثلا این گونه خطاب میکنه چرا حضرت موسی مثلا وقتی زد اون قیبتیه رو کشت و بعد گفت اخفر لی تو نفسی چرا خدا در آی قرآنش میفهم و وجده که زالن فهدا پیامبر ما تو رو علاز ظاهر آیین جوری میگه دیگه ما تو رو زال و گمراه یافتیم پس حدایت کردیم پیغمبر پس زال بوده گمراه بوده در حالی که اعتقاد تمامی ما به عنوان شیعه این است که تمامی انبیا، دقت بفرمید تمامی حجاج الهیه از صلب مؤمن یکتاپرست و هنیف و رحم مادران هنیف و متدین و از بد تولد اینها یکتاپرست و خداپرست بودن تمامی انبیا و اوسیای انبیا و تمامی عرض و حضور رسولان الهی دقت فرمونید چه کردم؟ چند روز پیش داشتم یه جایی درس می دادم در این آیه قرآن که حضرت ابراهیم علیه السلام هستش که حضرت ابراهیم از قال لعبیه آزر هنگامی که عرض و حضور شما که حضرت ابراهیم گفتن لعبیه اب بابای حضرت ابراهیم آزر خود بودپرست بوده گفتم نه ابی به امو هم ابی میگن پدران انبیاء همه و همه و همه مبهد بودن پدران اوسیای انبیا چه برسد به سرامت اوسیای که امیر ممنان علی السلام هستند. لذا وجود مقدس ابو طالب رحمت الله علی و صلوات الله علی پدر امیر ممنان صلوات الله علی از مبهدین و از علماء و اشجع شجاعان عرب بوده و مادر او فاطمه به انتحس سلام علیه ها مقامی دارد که پیامبر به او لقب مادر می دادن و در مقام ایمان بالاترین درجات داشتند بعد جالب حاله که شبهاتی که بعداً برسیم این بود که تو اون آیات هست که حضرت ابراهیم وقتی ستاره و ماه و خورشید و دید قال حضا ربی به ستاره که دید گفت چی قال حضا ربی اکثرا جالبه که معنا می کنند بعض معنای آیات رو این گونه معنا می که حضرت ابراهیم برگشت گفت این رب منه بعد شب که شد افول کرد اون ستاره یا ما یا خورشید گفت اینی لایه بلافلین چیزی که افول کند رو من دوست ندارم یعنی تفسیری که متاسفانه ها میرسیم تو بحثامن که در نبوت عین امامت عین توحید از اون چیزهایی که ما رو چهار مشکل میکنه خانم آیون اینه که ما کتاب خدا را به رأی خودمون به فهم خودمون یا به دیدگاه عامه می‌خوایم تفسیر کنیم نه که اهل بیت انم سلام زیل همین قاله حاضر را چی گفتن بعضی‌ها چه عراجیفی گفتن که زید ابراهیم گفت آره این خدای منه حالا یا به خاطر همراهی با ستاره پرستا بعد بگه نگاه کن نه شب که افول کرد گفته نه من ستارهی که افول کنه این که شان خدایی نداره انی لاه بولافلین در حالی که امام صادق ما و ائمه ما صلوات الله اینکه معلمان واقعیه. دین الهی و قرآن هستند فرمودن اینجا قال هاذا وجود مقدس حضرت ابراهیم فرمود در مقام استفهام انکاری بوده در مقام سؤالی انکاری بوده قال هاذا ربی این رب منه مثل اینکه مثلا شما یه چیزی رو می‌خوای انکار کنید به صورت سوالی میگید میگم من با این درس بخونم با این برم سفر اینو میگید من قبول کنم تا این استفهام انکاری بوده قال هاذا ربی من اینو به خدای بگیرم اینی که افول میکنه این شعن خدایی داره خوب دقت کنید بعد ها یکی از این چیزهایی که مخلوقات نمیتونن درک ندارن حتی اینی که کتاب خدا و آیاتی که عل الظاهر محکم این آیات ها حتی اینها را به تفسیر غلط انجام میدن باید در خانه یک از شؤون انبیا و کار انبیا یعلم همول و یعلم هم و یو هم از شعن انبیا اینه که اینا انسان ها رو تعلیم بدن تزکیه کنن یعلم همول کتاب و الحکمه کتاب و حکمت رو تعلیم بدن ما باید کتاب و حکمت از سوی خدا بگیریم نمیشه کتاب و خدا رو از خودمون تفسیر کنیم و چه شد وجود مقدس علی ابن موسر الرضا علیه آلاف و تیت و ثنا فرمودند انسان ها نا باید به رسولی که معصوم باشد معصوم یعنی یه لحظهم گناه نکرده به گناه نمیاندازه خطا نکرده به خطا نمیاندازه اشتباه نکرده و اشتباه نمی کنه و نمیاندازه اگه غیر از این باشه نمیشه اطمینان کرد اگه غیر از این باشه نمیشه اونها عصفه باشند بعد فرمود که پس بین خدا و اینسان ها باید رسولی مقصوم لازم است تا امرو نه و تربیت الهی را به آنان برساند نکته بدیر دقت کنید حضرت میفهمن تربیت الهی رو آداب الهی رو به اینها یاد بده که اینا حتی تو قضا خوردن چجور قضا بخورد تو لباس پوشیدن چجور لباس بپوشید تو رفتار بخانواده چجور رفتار کنید توی مسائل ارتباط اجتماعی چگونه باشید عرض بزرگ شما که تو تمام چیزهای این رو یاد بگیری یاد بگیری آدابه تو هر مسئلهی که میبینیم نیاز داری لذا فرمودن مخصم در هنگام خوابیدن به پهلوی راست بخوابید بهتره غذا خوردن اینجوری قضا بخورید خیلی چیزها رو توصیف فرمودن خیلی نکته ها رو دقیق گفتن از این بگیریم تا بالاتر مسائل رو فرمودن اینها رو با تربیت کنن تربیت الهی رو باید از اینها یاد بگیرن و آنان را مبذف کند که بتوانن با آن منافق خود را احراز کرده و ضرور زیان را از خود دور کنن و الا زرر میکنن تو دنیا و الا تو این بازار دنیا که امام جواد علیه السلام فرمود که این دنیا از دنیا سوقون دنیا سوق بازاره رو فیها قومون و خسرافیه الاخرون یده تو این دنیا سود میکنن یه زرر بسم الله الرحمن الرحیم و قسم به اصر اِنَ لفی خسر به بدرستی که انسان در خسران زیان است اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات مگر کسانی که ایمان به خدا و رسول او و جانشینان رسول او بیاورند و عَمِلُوا صَالِحَات به تبییت این ایمان عمل صالح انجام بدهند سپس حقانیت خدا و رسول را که یافتند و تبا و بالحق توصیه کنند این حق را به دیگران که اونها رو هم از خسران به منافع و ربح در تجارت بکشونن چطور دوتون دو مسائل دنیایی میگیم که حواست باشه فلان جا سرمایه گذار نکنی ضرر میکنی فلان کار نکنی یا سرمایه از بین میره خب در امور دنیا اخراوی چرا نباید ما اینگونه باشیم و طباس ها به و طباس ها به صبر توصیه میکنن بر سبر بر این اعتقاد بر این ایمان چون شیطان و شیاطین بیکار نیستن که انسانها را از در خانه و باب الهی انبیا و اوسیالی انبیا دور کنند، دور کنند. همین امروز که ساعت مقدس امام از صلابات الله علیه ایشون جانشین به حق رسول مکرم صلی الله علیه وسلم اصلا ایشون اصلا در جایگاه نبی هستند کجا میگم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع رساله در زیاد جامعه خونیم سلام بر شما اهل بیت نبوه که شما جایگاهتون موضعیتون موزه, موزه چیه؟ رسالته شما در جای رسول و نبی نشستید و موضع رساله و مختلف الملائکه حضرت فرمودند پس بر آنان است که ضرر زیان از خود اینگونه دور کنند و بدین جهت با رسولان الهی در ارتباط باشند. من طبق برنامه چون قراره که حدود هفتانی ما یک ارز که باشه یه استرهادی بشه انشالله تغییر زاغی خانم آیون بدن در این که سوالات اگه مطرح هستش لطف کنید که به صورت مکتوب بنویسید و عزیزانی که مسئولات برنامه دارن بدید که یه قسمت برنامه رو میذارید به پرستش و پاسخ سلبات هدیه بفرمین بسم الله الرحمن الرحیم در قسمت دوم بحثمون از بزرگوور شما یک سری سوالاتی رو ظاهرا مطرح شده که این سوالات رو من در ابتدا پاسخ میدم بعد ان بپردازیم به بقیه بحث. سوال فرمودن که چگونه شخص چگونه شخص اصل نبوت را باور کند؟ یعنی اینکه چگونه می مطمئن شود خداوند تبارک و تعالی برای هدایت خرق انتخاب رجل الهی را برگزیده است نکته اول این که شخص اگر معتقد به قرآن هست خب این تصریح آیات قرآن که خداون استفا کرده و اشتباه کرده و انتخاب کرده که نوح رو ابراهیم را موسی و ایسا را و انبیار را و رسولان را و در عین این که در آیات قرآن آمده از توسط خود رسولانی که از سوی خدا آمده اند، و توسط جانشینان اون این مسئله تبیین شده. یه نکته. نکته بعدی هم این که کسانی که از سوی خدا آمدن و رسول هستند اینها نشانه‌هایی دارن که رسولند. که این چند نشانه دفعه گذشته در جلسه گذشته عرض شد. یکی اینکه اینها منصوب من الله هستند. یعنی خدای اینا رو نصب کرده دوم اینکه معصومن یعنی اسمت دارن اشتباه نمی کنند و اثبات اسمت خودشون را هم میکنن سوم منصوصن دقت کنید منصوصن از سوی خدا یعنی به نص صریح تصریحاً توسط حجاج گذشته انبیا گذشته مشخصات و ایدنتیفی در واقع دقیق این انبیا گفته شده کما اینکه در سوره مبارک صف در آیات سیا چهارش ما اینگونه میخوانیم که وجود مقدس حضرت ایسا به حواریین و همچنین به بنی اسرائیل عرض به حضور شما که می میدهد که پس از من پیامبری می آید رسولی می آید که شما باید او را تایید کنید که اسم او احمد است سلواتی خط بفرمید محمد که من میخوام اتباقای این عرض بزرگ شما آیه رو بخونم که برای شما که در تایید این مسئله حالا در این حال چهارمین مشخصه انبیاء الهی پس از منسوس بودن این هست که اینها دارای علم الهی هستند دارای علوم الهی هستند انواع علوم رو هرچی از علوم بشری و علوم مافوق بشری دنیوی و اخروی رو اینها دارای اون هستند و لذا سوالاتی که از اونها می‌پرسی اینا پاسخگو هستند یعنی اینطور نیستش که ناوز بالله مردم سوال بکنن و اینها مردم رو به اشتباه بندازیم یا بگن بلد نیستیم و نکته بعدی پس از علم الهی مشخصه بعدین هستش که اینها دارای قدرت الهی هستند و به قدرت الهی اینها معجزه میکنند و می میکنند پس پنج تا مشخصه ما گفتیم مشخصه اول از با حضور شما که این هستش که انبیا الهی از سوی خدا نصب شدند که در آیات قرآن نص سریح گفته شده خود خدا این رو نسب کرده دوم اینکه اینها معصوم هستن سوم اینکه که منصوصن یعنی توسط حجت قبلی یا نبی قبلی مشخصات اینها گفته شده من آیه رو بخونم برای شما تلاوت کنم در سوره مبارک سف آیه شش به اتقال ایساب نو مریم یا بنی اسرائیل اننی رسول الله علیکم مصدقن لما بین یدی منت تورات انگامی که عیسی ابن مریم به بنی اسرائیل گفت انی رسول الله من رسول الله و در علیکم برای شما اومدم مصدقن لما بین یدی منت تورات من تصدیق میکنم به نبی پیشین خودم و کتاب او که توراته ببین نس یعنی همین که پیشین و پسین رو حجت خدا تصدیق میکنه مسددقا تصدیق میکنم لما بینگیدگیه من تورات من توراتو که قبل از خودم بوده تصدیق میکنم و مبشرن و بشارت میدهم بر رسولا بر رسولی که یاتی من بعدی که بعد از من میآید او احمد صلی الله علیه وسلم و نام او احمد است فلا ما جاون بل بات قالو هاا من به شارارت پیشاپیش میدم که رسول بعد از من حجت بعد از من نامش مشخصاتش این گونه است پس دقت فرمودیم سگ مشخصه ای اینه که منسوس من الله انبیاء علهی حاجه الهی یعنی مشخصاتش توسط حجاج الهی گفته میشه لذا وجود مقدس پیانبر هم همین گونه بودن صلی الله علیه وسلم مشخصات جانشینان خودشون رو فرمودن جانشین خودشون امیر مؤمنان صلی اللہ علیه و جانشینان بعد از اون رو هم معرفی کردن که مردم گیج نباشن این یکی از کارهایی است که خدا کمک کرده که مردم گیج نباشن بعد از هر حجتی که میره حجت بعدی کیه نمونن و نقطه بعدی گفتیم علم الهی که حالا بعدها اینشاللو در بحث میکنیم اگه برسیم که بسیار مشخصه مهمی هست و بحث بعدیش هم قدرت الهی است خب در مرحله بعد از کجا معلوم در مورد شخص نبی مطمئن شد یا شود که این شخص همان کسی است که مورد اشتباه و استفای الهی بوده است از همین مشخصاتی که عرض کردم بعد علم الهی داشته باشه بعد قدرت الهی داشته باشه بعد با مشخصاتی که حجت قبلی درباره او گفته مشخصاتش بخوره هم خودش باید بتونه اثبات کنه هم کلامش هم رفتارش هم اسمتش و هم حجت قبلی که مشخصات او رو گفته در مورد اینکه آیا برقی از انبیا واجب اطاعه نبودن یا بودن توضیح فرمایید انبیاء الهی اگر برای گاهی اوقات فقط و فقط حجج الهی برای خانوادهشون بودن گاهی اوقات برای خانواده و اقوام نزدیکشون بودن 224 هزار پیامبران الهی این حوزه تبلیغی و حوزه رسالتشون متفاوت بوده بعضی از اینها برای محله بودن مثلا بعضی از اینها برای روستا بودن بعضی اینها برای شهر کوچک بودن بعضی اینها برای شهر بزرگ بودن بعضی اینها برای کشوری بودن مثلا وجود مقدس حضرت موسی و حضرت عیسی علی نبی نو علیهم و علیه السلام اینها برای بنی اسرائیل بودن مبعوث بودن بنی اسرائیل قوم بزرگی بوده خواه. خیلی اسرائیل بودن در اینی که علال از بودن وقت پیامبران دیگه زیر مجموعه دستور این پیامبران هستند. یعنی اگه ما بین دو تا علال ازم قرار بگیرن معمولا پیامبری که یا حجتی که یا وسیعی که هرچی ما بین دو رسول می آید او به رسالت دقت بفهم او به رسالت پیغمبر قبلی یا حجت قبلی بشارت می‌دهد و تحکیم و تثبیت می‌کند و بشارت می‌دهد به آمدن رسول بعدی دقت کنید چی شد پس هر میان دو تا رسول میان دو تا حجت اگر حججی یا رسولانی بودند اینها تابع اون رسولان اصلی بودند خب به امر الهی همه اونها دعوت میکردن به پیغمبر قبلی از خودشون که از درجه رزی رتبه بالاتری بوده و بشارت میدادن به پیغمبری که بعد از خودشون میمدن حالا یا در رتبه خودشون بود یا بالاتر بوده اگه در رتبه خودشون می میگوتم ما دنیا رفتیم فلانی بعد از ما حجته بر شما فلانی رو مثلا مراجعه کنید حالا آیا نه همه واجب الاطاعت بودن؟ بله اگر این که افرادی اینها بهشون دستورات یا نکاتی میگفتند از سوی خدا بله واجب اطاعت بودن چون رسول الهی بودن دیگه حتی بر فرزندشون حتی بر همسرشون فرق نمیکنه اگر حکمت ارسال رسول اعلان منافع و مسالح و بندگان و مخلوقین است، آیا چنین امری محقق شده است یعنی تمام منافع و مساله به تمام بندگان رسیده است اینکه آیا تمام منافع و مساله به بندگان رسیده است به یه عبارتی نه به یه آره به یه نه از این جهت که خب ما یه سری اخبار و رو روایات حالا چه از انبیاء پیشین چه از رسول مکرم صلی الله علیه وسلم و این مهدار به طور کامل همه چی دست ما نرسیده ولی اون که نیاز اصلی ما رو برطرف کنه هست این اولا اینکه نیازهای اصلی و های اصلی ما رو برطرف کنه هست اینطوریه که گلگیجی بگیریم سرگردان باشیم حیران باشیم که چی کار بکنیم دقت بفرمید اما این یه سری مساله آیا به همه بندگان رسید؟ نه به همه بندگان ممکن نرسیده باشه حالا این بندگان یاد خودشون نرفتن دنبالش دقت بفرمید یا خودشون نرفتن دنبالش یا بهشون نرسیده اگه میتونستم برم دنبالش و به دستشون نرسیده مقصرن اینجا میشم مقا... جاهل مقصر اگه نه بهشون مطلب نرسیده بره علتی خب ممکن نرسیده باشه یعنی انان داریم ای که ممکنه اینا بر... به تعبیری جوامهی نبی دیده نیستن ولی ما جامعه هستیم که نبی دیده ایم. یعنی به ما رسیده رسول دستوراتش منافع و مزاری که گفته ولی ممکنه که سانی باشن؟ اینا باشن اگر مستضعف باشن به تعبیر آیت قرآن استضعافشون و استضعاف اصلی باشه اون وقت عرض به در حد فهمشون عقلشون عرض به حضور شما خدا میخواد بعد در عالم دیگه ازشون امتحان میگیره عرض به حضور شما که در مورد هم همعصر آیا اینگونه بوده که ای از آزام بزرگواران ممور به طبیعت دیگری بوده است بله که آیا بوده که یه پیامبری از پیامبر دیگ و میکرده حتی حتی در زمان پیامبر خودمون بعدش که وجود مقدس امیرالمؤمنان صلوات الله علیه بودن امام حسن مجتبی صلوات الله علیه ما حجت بودن ولی به مأموریت تبعیت به از امیرالمؤمنان بودن امام حسین مأمور به تبعیت از وجود مقدس امام حسن علیه السلام بودن هرچند که حجت الهیان بودن در مورد انبیا هم همین بوده انبیا الهی هم بر اساس اون مقامشون حوزه تبلیغشون. گایی قد در یه رتبه بودن گایی قد رتبه بالاتر بودن و معمور بود که این از اون ارزوزور شما که تباییت کنه لذاب پیامبران بنی اسرائیل که بنی اسرائیل در یه روز هفتاد تا پیغمبر کشتند در یک روز هفتاد تا پیغمبر کشتند قیقت بفهمید؟ تمام این پیامبران که در امت بنی اسرائیل و اومدن در زمان حضرت موسا و حضرت ایسا ارزوزور شما که اینها مأمور به تبعیت حضرت موسی و حضرت عیسی بودن. عرض به حضور شما که در مورد وصیای حضرت عیسی علیه السلام و اینکه قبل از خاتم الانبیا صلی الله علیه وسلم حضرت عیسی بودند یا نه توضیح دهید. ما بین حضرت عیسی علیه السلام و پیامبر ما حدوداً چند سال 650 سال فاصله است. این 650 سال رو دوازده نفر حواریون یا دوازده نفر جانشینان حضرت عیسی علیه السلام بودن که یکی شمعون صفاست شمعون صفا جد پدری ارز به حضور شما که جناب مادر امام اصر سلام الله علیه به حضور شما که ملیکا یا حضرت نگس خاتونن شمعون صفا به قدره که جانشینان حضرت عیسی الا نبی نوا سلام هستن و حجت الهی هم هستن ایشون از حضور شما که جد پدری حضرت نجس خاتون هستن که قبلا ایشون در واقع در امپراتوری روم بودن و دینشون عزوزات دین عیسیبی بود و بعد به دین اسلام مشرف شدن شمون صفا مثلا یکیش بود از این دوازده نفر این دوازده نفری ای که تعیین شده بود از سوی خدا اینا در حد فاصل بین حضرت عیسی علیه سلام تا وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم دین حضرت عیسی رو تبلیغ کردند و بشارت و پیامبر میدادن حالا یه نقلی در مورد سلمان هم هست ما نمیخوام این وارد بارد به شمال فعلا که سلمانم هم بی ارتباط نیست با این ارز و حضورشون جانشینان حضرت عیسی علیه سلام و اینکه او به بشارت و اونها به سرع پیامبر آمد و میدانید که جناب سلمان فارسی سلام الله علی ایشون زمانی که پیامبر رو درک کردن سنشون حدودن سن 350 سال بوده چون حدود 400 سال ایشون دنیا رفته جناب سلمان فارسی سن چقدر بوده وقتی پیامبر رو درک کرده و خدمت پیانبر ایشون رسیده 350 سال بوده دقت کنیم یه چند سال هم زندگی کرده بوده 3000 و مثلا 70 80 سالگی زن و سالگی ایشون از دنیا رفته و اینا با حجاج الهیه یک ما بینه در واقع حضرت عیسی و پیامبر همین 12 نفر بودن در ارتباط بوده است خب بریم دنباله بحث چون وقتمون کمه حالا اگه سوالاتی دیگه هم بود لطف کنید که این سوالات رو arz uruz شما که به عزیزان بدید که ما ان در جلسات بعد ما هرچند که تو این سه جلسه باقی مانده ای که هست نمیتونیم همه مباحث رو بگیم ولی سعی میکنیم حداقل او مباحث رو عرض کنیم که ان قابل استفاده برای خانم ها آیون باشه حالا تا اینجا سوال دیگه نیست حالت شفایی هم اشکال نداره یه وقت آیون خانم سوال بکنم سوالی ندارن خانم آیون خاله الحمدلله خدا شکر در دنبال بحث عرض کنم که وجود مقدس امیر مومنان صلابات الله علی در نحج بلاغه در خطبه نوید پنج در تعیید صحبتهای قبلی دارم ارزمان که پیامبران برای مصالح و مفاسد و اینکه انسانها رو از زلالت و گمراهی نجات بدن رسولان الهی مبعوض شدن آمده که انسانها رو تسکیه کنند، انسانها رو تعلیم بدن انسانها رو تربیت کنند. امیر ممنون صلوات الله علیه من ترجمه شو و قسمت اولشو به بأفهو و ناسو زلالون فی حیرتن انسان ها در زلالت محض بودند خدا در حالی که در اینها در زلالت و حیرت و گیجی چون آخه این سآل مطرحه ای که اگر پیامبران مبعوث نمی شدند آیا انسان ها با عقل فطری و عقل خودشون می توانستن این منافع مفاسد رو به دست بیارن جواب روایات ما میفردن نه اینطور نیست نمیتونستند. اگر پیامبران نبودن که میخونیم انشالله اصلا پیامبران آمدن یکی از کارهاشون اثاره اقوله یعنی عقلها رو برنگیزانن عقلها رو بارور کنن و مطالبی بگوین که بشریت با عقل فتری خودش نمیتواند به اونجاها برسد مگر به نبی و به وسیع دقیقت بفرمین تو این سال مطرحه امروز هم میگن ما چرا امروز احتیاج به پیامبر نداریم یا چرا پیامبر اکرم آخرین پیامبر شد یکی تحلیل تحلیلای غلط میگن چون که بشریت بعد از پیامبر به بلوغ عقلی و فکری رسیده بود و خودش توانست منافع و مفاسد رو به دست بیاورد و امروز همین گونه است که بشریت از نظر علمی و عقلی به بلوغ رسیده است و احتیاجی به پیامبر و جانشینان پیامبر و دین پیامبران ندارد که از اون حرفای بسیار بسیار غلطه که جاهلیت امروز بشریت کمتر از جاهلیت زمانهای قدیم نیست بلکه در جهاتی بیشتره برحال وجود مقدس امیر کلام امیر مؤمنان صلوات الله علیه می خداوند او را وجود مقدس پیامبر را صلی الله علیه و سلم را در حالی فرستاد که مردم در حیرت و گمراهی سرگردان بودند و در دل فتنه قرار گرفته بودند. هاتبون فی فتنتین اینها در حالی بودند که هوا و هوس ها و شهوت ها آنها را به خودشون جذب کرد تکبر، خودخواهی آنها را از جاده حق دور کرده بود. جاهلیت شدید آنان را سبک سر نموده بود و در کار خیش پریشانحال و مسترب و نگران بودند و به جهل و نادانی مبتلا گشته بودند حیارا فی زلزال من الامر و بلا من الجهل حیارا بودند سکارا بودند گیج بودند مست بودند تحبیر که حتی از حیوان پستر زندگی میکندند ی تعبیر ما در ربایت داریم که اگر تعلیم انبیان نبود و فریادرسی اونها نبود انسان‌ها اندازه بهیمیت و به میموندن در به گیجی مبهوت فبالغه محمد صلی الله علیه, علیه و سلم پس خداوند پیامبر را برگزید و آنان رساند فبالغه فی نصیحه پیامبر در نصیحت به اینها کوشش کرد و مضا علت طریقه. گام در راه درست رو که چجوری زندگی کنن به اینها آموخت و دعا اله حکمته و الموعظت الحسنه و اینها رو به سوی حکمت و معوظه حسنه خواند این نکته که عرض کردم که انبیا برای تعلیم اومدن بشریت کجا میتونه با عقل فطری خودش به این چیزها بفهمه کجا میتونه که راه را اد شاه تشخیص بده اصلا حقیقت دنیا حقیقت ظلمانی است ما فردا در روز زیارت میخونیم که زیارت امام اصف السلام علیکه یا نور الله لذی یهتدی به المهتدون السلام علیکه یا نور الله فی ظلمات الارض سلام بر تو ای نور خدا در ظلمت کده زمین زمین ظلمانی و ذات است جزبه مخلوقات ظلمانی خداست انسان ها اگر به نور طریقت و هدایت حجاج الهی و رسولان نباشد در این ظلمت کرده می در قرد چاه و دره ها و محاله که افتاده اند اونهایی که طبعیت نکردن که افتاده اند حضرت همینو فرمودند. در یک جمله دیگر در جای دیگر در خطبه هفتاد و دو وجود مقدس امیر کلام امیر ممنان فرمان خدای متعال حتی او را قبس القابس و اضاعت طریق للخابت خدا مشعل هدایتی برفروخ اینکه که عرض کردم و راه را برای گم راه روشن نمود حتی او را قبس القابس و اضاعت طریق للخابث برای کسایی که را, را گم کرده بودن گیت شده بودن که چی کار کنیم چجور زندگی کنیم حال عقل فطری این نکتری میگه دیگه من چجور زندگی کنم درست زندگی کردن باشه آقا دنیا که همش این نیست که به هدیت به هل قلوب بعد خوزات الفتن والآثام و به وجود پیامبر قلب ها را از فتنه ها و گناهان هدایت کرد پس وجود نبی و وسی و رسولان الهی این قسمت بحث رو میخوام جمع کنم این رو برای انسانیت توسط خداوند داشته از به لطف الهی اولا فضل و لطف خداست این یک که خدای مطال ما را این گونه خاص هدایت کند این نکتر دقت کنی وجود رسولان الهی برای ما فضل خداست و لطف خداست که خدا ما را با بهترین مخلوقاتش آشنا کرده حالا چرا مجازون اونها نشدیم یه بحث دیگه است یه جدی باید پردازیم اینا شاگه دولای خدا هستن حالا کجا امتحاناشون دادن چطور بوده اون بحث جدا خدا لطف کرده که این شاگرد اولان خلقتش رو فرستده در مردم که مردم معمولی از پسترینشون تا بالاترینشون بتوانن بهروری داشته باشن از اینها چه بهروری؟ بهروری هدایت بهروری تعلیم و تعلم بهروری تربیت بهروری در منافع و مزار یا مفاسد که بشناسن مزار رو دوری کنن مف... مفاسد رو دوری کنن و منافع رو به دست بیارن بهروری اثاره اقول عقل ها باربر میشه عقل ها درجه فهمش میره بالا اینجا یه دونه ویندوز باز کنیم به قول امروزی یه پرانتز حالا هرچی اسمش رو میگین انشالله در زمان ظهور امام از اروان آفدا پنج باب علوم دیگه باز میشه چون تا حالا از 27 باب علم طبق روات ما دو باب علم باز شده تا قبل ظهورا ظهور که تحقیق پیدا نکرده بس معلومه هنوز این دو باب کامل باز نشده بازم چه در علوم دنیاوی چه در علوم اخروی 25 باب علم دقیق بفرمی در زمان ظهور و حکومت امام از محقق میشه اما لازمه این مسئله چی میفهمان لازمه اینه که خدای متعال به دست مبارک امام از فدا حضرت دست بر سر رؤوس ناس میگذارند و او على رؤوس ناس بر عرض سرها به اشاره و عقول رو درجاتشون رو بالا میبرند بعد این 25 باب علم باز میشه چه در علوم دنیاویش و طبیعه چه در علوم ماورا دقت فرمون نیدم چه ارز کنم بعد اونجا دیدنی خانم آیون یعنی در مسجد ای که چون وظیفه دارم که ساد مقدس امامه است حتما تذکر بدیم ما ما بعد یاد بگیریم که حتما همونطور که سخنرانان آخر مجلسشون رو به ذکر مساحب عبادلال علیه سلام معطر میکنم و نمک مجلسه بسیار مهم است که خلاصه‌ای هر تو میتوی گریزی به ساعت مقدس امام عصرمون داشته باشیم که او امروز اساره انبیا و اولیاست تمام انبیا و اولیای الهی همه چشمشون به ساعت مقدس اوست این مأذل اولیا و مدل اعدا او طالب خون به ناحق ریخته شده انبیاست و فرزندان انبیا و در زمانی که انشاءالله حضرت ظهور میکنن و انشاءالله همین امشب و همین لحظه انشاءالله تحقق پیدا کنه در مسجد کوفه که هزاران دره در روایت حضرت میزنند حضرت اقامه نماز میکنن وقت نماز دیده نیست در اون نماز که پیش نماز وجود مقدس امام از اروان و فداس قطعا در صفحه نماز شما انبیاء الهی رو میبینید جان شینان الهی رو میبینید شما اصحاب کف رو می‌بینید. در روات گونه است حضرت ایسا علا نبی نبا علیه و سلام در خلف امام است. دیدمش دیدنی ها اصلا خدا داغ این روز بردلمون نگذاره حق پیانبر و احل بیت اسمش، اسمتش و قرآنش ببینه انسان که به واقع اولیاء الهی اونجا جمعند حضرت خضر رو میبینیم اینشالله خزده که این همه دنبال بودیم که آب حیات خورده است الیاس رو می بینیم. اینه که حالا ما تبا روایت داریم عرض میکنم که خدمتونها خب اینا دیدنی نیست واقعا وقتی اینا هر کدوم در خلف امام است مطی امام هست چون اوس که در واقع خلقت به او پا شده الان جدا از خدا بخوایم که انشاءالله خدا توفیق بدهد دیدار این نماز و اقامه نماز و نشستن و برخاستن با این عزیزان الهی حالا بعض از اولیاء الهی مثل سلمان فارسی و عزیزان دیگری به دنیا برمی‌گردند اونها هم دیدنی هستند برحال بحث اول ما در این قسمت تمام است در این که خدای متعال چرا و چگونه از بحضور ارتباط با مخلوقات ایجاد کرد طریق رسولان و رجل الهی این رسولان و رجل الهی رو استفا کرد اشتباه کرد انتخاب کرد و سپس منافع و مزار و آنچه که رضا سخت اوست به مردم رساند توسط اینها و آنچه خیر دنیا برزخ و آخرت اونهاست هر تا عالم رو به اونها رسوند و به دنباله اون این که طبق آیات قرآن اتمام حجت می کند بر مردم که روز قیامت نگن خدای ما به ما نرسید مطالب به ما نرسید برای همین هم ما در مثلا معاصی و گناهان و در زلالت موندیم این قسمت اول بحث اما قسمت حالا دوم بحث با توجه به این که من حدود یک رو بخ دارم تا اینجا سالی نیستش خانم ها این سالی ندارن خب نوشتن اینجا که ساعت هشت و سی دقیقه که بنده از حضورتون مرخص میشم از عزیزان و مدداهین تشریف و بردن لذا بردن لود کنن که تشریف داشته باشن که انشالله فیض که میدهن استفاده بکنید اما قسمت دوم بحث قسمت دوم بحث من یه نکاتی رو میخوام به صورت خیلی کپسولی سریع بگم نمیتونم خیلی باقام بازش کنم طول میکشه وقتمونم کم هست چون به مباحث دیگه میمونیم ما باید شبهات نبوت رو بگیم بحث اسمت رو بهش بپردازیم فرق نبی و رسول و محدث رو اینها رو بگیم عرض به حضور شما که و همچنین حالا دو تا نکته که در آخر بحث باید انشاءالله عرض کنم یکی از نکاتی که ما در روایاتمون و آیات قرآن به ما تسریح شده اینه که ما در یک عالمی بودیم قبل از این عالم به نام عالم زر در عالم زر در اونجا خدای متعال طبق آیه 72 سده 72 سوره اعراف و از اخذ که من بنی آدم من ظهورهم و هم، و اشهدهم علا انفسهم به رب بکم قالو بلا طبع این آیه خدای متعل از ما امتحان گرفته در توحید در نبوت و در وسایت نب... وجود مقدس نبی که وجود مقدس امیر ممنان علیه و امیر حدا سلام هستش این امتحان گرفته شده خلاصتن دارم ارز میکنم و معرفت خودش را و معرفت نبیش را و معرفت امیر و ائمه و سلام را هم عطا کرده اثبات و حقانیت اونها را برون عالم کرده دقیق بفرمید و سپس و سپس مخلوقات بر اساس امتحاناتی که گرفتند و نتیجه هایی که داده شده شقی و سعید معلوم شده آنانی که قبول کردند سعید شدند و تو این دنیا آمدن سعیدند و سعید هم از دنیا میرم به لطف خدا آنانی که در امتحانات رفوزه شدن یعنی مثلا توحید و قبول شدن نبوت و رد شدن یا نبوت قبول شدن امامت و رد شدن گوب دقت بفرمید حتی بعضی تو امتحان رد شدن دوباره امتحان دادن قبول شدن من دارم چون خلاصه اینا رو عرض میکنم خدمتون این اینها شدن شقی عشقیات تو این دنیا که میان. خدا یک بار دیگه به لطفش اینها رو امتحاناتی گذاشت از طریق انبیا به رسوندن مطالب که اینا امتحان بدن سعید بشن سعید بشن پس سعید ها سعید می شوند هستند منطقه ما نمی ان سعیدیمش انشالله که سعیدیم انشالله که سعیدیم و انشالله سعید هم از دنیا برویم دقت بفرمید عشقی کسانی بودن که در امتحان رد شدن این امتحان محوریتش توحید بوده نبوت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بلایت و سایت امیر مومن و عمیه خدا علیه و سلام هست یه امتحانم خدا جدا از انبیا گرفته در مقام نبوت نبی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و بلایت ایشون و وساعت اوصیه ایشون از انبیا درجه بندی انبیا. و مقاماتشون بر اساس درجات اقرار و ایمانشون و معرفتشون به ساعت مقدس پیامور و اهلویت اسمه در اون سلام بوده مثلا تو این رتبه ها جناب حضرت ابراهیم رتبه های بالا رو گرفته و جناب ابراهیم علیه السلام این گونه از که ظاهرن بعد از پیامور و عیمه حده سلام بالاترین بالت این رتبه رو داردشون گوده قد ولذا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از ایشون سوال کردن یا سوال شد که مثلا امیر مومنان یا حضرت خدیجی یا پیامبر در دوران قبل از بعصت رسمی نبی بر چه دین آینی بودن در دین آین ابراهیم حنیف برحال این امتحان گرفته شد حتی در امتحانی که از جناب حضرت آدم گرفته شد چرا حضرت آدم جز اولوالعزم نیست فرمودن که چون که او را صاحب ازم نیافتیم سوال شد یعنی چی او را بلم نجد لهو ازما آی قرآنه چون آدم صفی الله پدر بزرگ همه من و شما ایشون ارز به حضور شما که در امتحانی که در باب وسایت حضرت مهدی عدی سلام بود در روات هستش که یه مقدار مکس کرد همین مکس کرد نگیرات کنه مکس کرده به خاطر اون که مکس کرد و ازم ندار جز اولو ازم نشد خلاصه امتحانات عجیبی بوده در حتی بین انبیا دقت بفرمایید اونا در رتبای های المپیادی خلاصه بعد فرمودن که اگر اون امتحان و اون معاینه و اون عرض حضور شما که معرفت نبود اینو دقت بفرمید اگر اون معرفت نبود خلاصه ای مطلب اینجا کسی نه خالقش رو نه رازقش اگر اون معرفت نبود امام صادق فرمون کان ازالک معاینه الله در عالم زر به صورت معاینه ما خدا را دیدیم و باور کردیم و یقین کردیم و بلا گفتیم سپس تو دنیا که آمدیم دقیق کنیم فانسا هم المعاینه این معاینه را قفلت کرد فانسا انسا به معنای حالا ما فراموشی میگیم ولی به معنای قفلت گرف اینا را و اثبتل اقرار فی صدورهم. اما این معرفت رو به توحید و معرفت به نبی و رو در سینه ها قرار داد و اثبت اقرار فی صدورهم. در مورد توحید بیشتر تصریح اینجا و لولا ظالک اگر اون معرفت نبود گوش کنید دقت بفرمید اگر اون معرفت نبود ما عرف احد خالقه و رازقه. اگر اون معرفت نبود اینجا کسی نه با عقل خودش و با عقلش نه میتونه خالقش رو بشناسه نه رازقش یعنی بشر بود و عقلش نمیتونه به اینجا برسه امام صادق ما, ما میفرماند حالی دست به پا بزنه بشه بگه ما میتونم هم میتونم خدا رو بشناسم هم. هم میتونم راه بدم هم میتونم راه تعیین کنم هم میتونم هدایت رو تعیین کنم بعد به دنباله اون فرمودن که این فراموش شد تا اومادین ما تو دنیا تو این دنیا که اومدین امیر مؤمنان صلوات الله علی در نحج البلاغه در خطبه یک که توصیه میکنه خانوها آیون رو به خواندن خطبات نحج البلاغه و همچنین دعاهای سیفه سجادیه که دریای از معارف است در اونجا این جمله که فرمود فبعث فیهم رسوله خدای متعال در میان انسان ها مبعوث کرد رسولانش را و باطره الیهم انبیائه و انبیائش را پی در و پشت سره هم بر اینها فرستاد نه یکی نه دوتا نه ستا همین طور برو تا 124 هزار لیست ادوهم چرا این کار کرد؟ لیست ادوهم میثاق فطرته تا اینکه پیمان فطرتش را که در عالم زر از اونها گرفته بود از اینها مطالبه کنه لیست ما وقتی مشرف میشیم حج؟ می رسیم در روبروی هجر الاسفت این هجر الاسفت که اولاً هجر الابیز بوده امام صادق ما فرمود در از استعلام یعنی دست های پر از گناه انسان ها این شده هجر الاسفت این هجر بوده این ملک است فرشته است که خدا به شکل این سنگ در برده تش. حضرت فرمودن او در عالم زر بوده است شاهد بوده اینجا که میرسی باید رو به حجر الاسفر که همون ملکیست که در عالم زر بوده است باید استلام کنی و با او ادای عهد کنی و تجد عهد کنی او رو شاهد بگیری که همون که او شاهد بوده در عالم زر لیستعدوخم میثاق فطرته آمده اند این فطرتی را که پیمانی با خدایش در عالم ذر بود و دوباره به ها تذکر بدن ازشون بخوان که ادای اون عهد رو دوباره تو دنیا انجام بدهیدا دوم یذکروها منسی نعمته نعمت هایی رو که منسی شده اونجا یادتون چیشو گفتم فنساهمل معینه اون نعمت مثل چی نعمت توحید نبوت ولایت و خیلی چیزها اینها رو به اینها متذکر میکنن هم تذکر میدن به بسیاری از نعمت هایی که ناله غفلت گرفته منسی به معنی غفلت و یحتجو علیهم بالتبلیغ به با تبلیغشون اتمام حجت میکنن آنچه خیر دنیا و آخرت ایناس به اینها برسونن و یثیرلهم دفائن العقول اثاره عقول ام ها رو انجام میدن حالا تا هر کسی به اندازه استعدادش، هر کس به اندازه فهمش هر کس به اندازه تواناییش عقلش بارور میشه انبیات اثار اغول میکنن یعنی عقلها رو بارور میکنن ینجینه هایی که در عقل نهفته دفینه هایی که در عقل نهفته است رو اینا رو باز میکنن لذا میبینین کسانی که با پیامبر و امه حدا سلام نشست و برخواست یا با انبیاء الهی اینا تو رفتارهاشون فهمشون دقتشون نگرششون اصلا تفاوت دارن تفاوت دارن حتی تو آداب رفتارهای عادیشون حتی تو برخورداشون اگر کسی ادعای دین دارد ولی تو رفتارش اشتباه میکنه این منوع عقلش خیلی باور نشده ادعای ارتباط با نبی و وسیر را دارد دقت بفرمی اگر ببای کسی با نبی و وسیر ارتباط ایجاد کند چه به صورت مستقیم چه به صورت کلامی چه به صورت روایاتشون رو و سخنانشون رو نشست و برخاست و زانو بزنه و روح او با اینها آشنا بشه قطعا و یقینا عقلش بارور میشه یعنی عقل بیرون عقل درون رو بارور میکند حجت بیرون حجت درون را بارور میکند عقل درون که بارور شد نتیجه چیه فرموندن؟ عقل درون که بارور شد نتیجه اش عبودیته نتیجه کسب رزوان الهیه نتیجه سعادت دنیا آخرته العقل ما عبد به رحمان و کتوس و عقل این گونه است که نتیجه اش انسان رو به عبادت خدا و کسب جنت و بشت و رزوان الهی می رسونه پس یکی از کارهای مهمه که انبیا به بیان امیر کلام امیر سلام انجام میدن نعمت‌ها نعمتها رو به ما متذکر میشن شون نعمت‌هایی که فراموش کردیم نمی اینکه به ما با رساندن احتجاج مطالبی ما را در واقع در جهت هدایت و سعادت و منافع مزاره کمک می اینکه این ما را بارو بر می یه چیزایی رو می فهمیم متوجه می شیم ان نظر اخلاقی رفتاری و همچنین موقعیت زندگی که دیگران که نبی ندیدن است متوجه نمیشن. شن این هست در تصریح هست در روایت ما و با تاجه که وقت منم دیگه تقریبا تمام هست من این قسمت بحث رو هم نتیجه بحثم این میشه که خلاصه وجود انبیاء الهی برکت است برای انسانیت که خدا لطف کرده است مننت گذاشته است ما سرآمد این منت تا که آغاز سخن من باشه ان برای جلسات آینده اینه آیه 164 سوره نساء اعوذ بالله من الشیطان رجیم لقد منن الله على المؤمنین aby běl, sefieh, rysoula, min anfusihim Ytlu alihema, ya toh, ya zakihim Vy ujel, muhu humul ktabu velchikmah Vy inkáno lfí zlál, mubid Kdyby běl, měl, sefieh, kdyby běl, ná toh, měl, náh Aine díky běl, měl, měl, náh ďin, sefieh, kdyby که امیر ایمانم رو که رسول است که امیر ایمانم رو که علی مرتزا و جان فرزندان اوس رو دارم در مینان شما قرار میدم لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم که این رسول از جنس نفس شماست البته به قرارت دیگر که حضرت زهرا سلام الله علیه در تفسیر آیه شریف فرموندن من انفسهم از نفیسترین چیزها قرارات این گونه هم فرمودن میان من هم که این پیامبر از چیز هاست که خدا منت گذاشته و در میان شما قرار داده از عالم عرش او را بر عالم فرش آبرده است وقت این پیانبر حالا چه می کند بر شما و چه خصوصیتی دارد جلسه آینده نبوت خاصه میگم. که این در واقع خاص پیامبر سالله علیه سلم نکاتی را عرض می و جلسه بعدش را انشاءالله به شبهات میپردازیم. الله خداوند به حرمت نبی اکرم و اهل بیت اسمت و به حرمت قرآنش قسم می دهیم که امر ظهور مفروس سرور مولای را همین لحظه اصلاح بگرداند خداوند معرفت به ساحت قدس نبوی و علوی و مهدوی را به همه ما عطا بگرداند خداوند به حق محمد و آل محمد توفیق و درک زمان ظهور مولایمان را به ما و زبل حقوق ما و دفاع از حریم دین او را بر ما همین لحظه و تا آخرین لحظه اون ارزانی بدارد آقابت امر همه ما را ختم به خیر و مؤمنین و مؤمنات و علما و مراجع را رحمت باسه از را انشاءالله شامل آنان بگرداند حدیه به ساعت مقدسی حضرت معصومه و همچنین به ساعت مقدس امام سلام علی السلام اجماعا سلباتی خد اللهم